از های دانش برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همین هنال گرامی شهندگان رتی من با درود فراوان و امید که هفته خوبی را پشتنا گذاشتید و آماده روزهای خوب آینده هستیم. خوشحالم بالگاهی شما برستم که در برنامه امروز آقای دکتر کامرال نبدینی استاد سا دانشگان کپولید برای ما فیراممون رشته های مهندسی تخصص ها و فوق و تخصص ها خواه گفت و اینکه چرا نسبت به نیاز مسته برابر کمبود مهندسی دارید. دکتر دکترنابدینی برای ما خوااه گفت که چگونه رشته دف ما رو در مهندسی جستجو پیدا کنید. آقای توکمبر را نبدینی آموزش شد در، سنخوزه استیت یونیورسیتی آغاز نبودند و پس از آن دوره های لیسانس مهندسی، امیس و دکیورهای قدار در دانشگاه کالیفورمیه جمعیدی گذارندند. آیدو جرابدینی، فکلتی ادوائزر و کوردینایتر هستند در دانشگاه کالیفورمی بامونه و اخصوم بران در آموزش و پژوهش یار و یاور اصطادان و دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه هستند. در 28 سال گذشته سنایه و فنانوری های گناگون از آقای دکتر کامران آبدینی در مقام مشاور و کنسلطن بهر برد از آن جمعه است دینی از لا گهرس کامپنیک. آقای دکتر آبدینی از بسیاری سازمان های علمی، آکادمیک و اجتماعی از جمله انجامن استادان و پجویشکران ایرانی تبار بودند. در 20 سال گذشته به حمد آقای دکتر آبدینی در مراسم باشکوهی ایشان و همکاران هر سال به بیش از 100 تا ایرانی در آمریکا اوارد رو می دهند پشتیبانی ها و راه نماهی های اقای دکتور تا آنجا ارزش داشته که انسیتوی مهندسی ایر ایشان را به عنوان چیر و رئیس کانسل اف دلوز برگذید. استاد آبدانی اوارد های بسیار دریافت کرد از جمله استاد سال ادوائزل سال در سال 2011 در دان سازمان های گناگون از ایشان که در کنفرانس و سمینه ها ساخنانی نمایند تازه های رشته را بازگو کنند و بشکافند و برای ما روشن کنند که پیش ها و روش های نبوین چگونه به شکوف های تکنولوژی کمک کرده آقای دکتر را بدینی بسیار سپاسگزاریم گذارین که در برنامه خودتان برای ما از رشته های گوناگون مندسی مندسی صناعی و بیشتر فاهید گف چرا با دکتر نواب خیلی ممنون و مچکر از لطفتون و این معرفیه بسیار شیرین دکتر برامو بگن چرا اصلا میگم سیول انجنیری تفریم بدیاب تجزیه تحریدی که پایین کرد خیلی ممنون میشه خواهش میکنم با کمال میل من یک سخنرانی دارم که معمولاً میرم برای تقریبا سه سال و جونیور سه ساعت برای جونیور کالج‌های مختلف راجب مهندسی و اینا صحبت میکنم البته من سعی میکنم اینا کمش میکنم به چه دقیقه و در زم نیشادم برای 20 دقیقه و راجب چیزهای دیگه هم بگم که مهمش اینه که ما برای مهندسی رشته مهندسی مخصوصا در در امریکا تقاضای بسیار زیادی داریم و یکی از دلایلش این بودش که در سال تقریبا در سال دهه 2000 این تعداد بسیار کمی شرکت های مختلف مهندس ها رو استخدام میکردن و برای همین تقاضا الان بسیار زیاده تقریبا میشه گفتش که سه برابر تعداد کسانی که دارن فراتحصیل تحصیل میشن و یا دنبال کار میگردن این نه تنها در آمریکا بلکه در تمام جهان این آدم میتونه ببینه و یکی از دلایل اصلیشم هم که همین کاراست که کسانی که در علوم کار میکنن مثل دوستان عزیزی که ما در انجامن خودمون داریم و دکتر نیری که برومان نشسته بودن یک سانیه پیش تمام این کارهایی که اینا دارن انجام میدن تون تون داره بهره برداری میشه و باید مهندس اینو اینو کاری بکنن که بیاد توی راه عملیش حال من خودم توی رشته های فوق... یعنی رشته های مهندسی در فوق لیسانس و دکترا تعداد ایرانی بسیاری میبینم که اکثرا از ایران میان اینجا ولی در سطح لیسانس که کسانی هستند که اکثررا بالاخره چندین ساله که شاید به در مادرشون اومده بودن اینجا و از دبیرستان میخوان وارد دانشگاه بشن رشتههای های مهندسی رو انتخاب نمیکنند و واسه همین گفتم که شاید برای دوستان ایرانی این چیز جالبی باشه برای اینکه تقاضا بسیار زیاده و حقوق بسیار خوبی دارن میدن و من دوست دارم که خب بیشتر ایرانیا در این رشتههایی که الان تقاضا زیاده توش شرکت بکنن یکی از چیزهایی که مهمه در زمن اینه که من موقعی که خودم مهندرشه مهندسی رو انتخاب میکردم یادم میاد که داشتم میرفتم بیه رشته رو انتخاب کنم در کنکور فکرشو کردم که غیر از رشته مهندسی راه و ساختمان و مکانیک و الکترونیک همه راجبش شنیده بودند. چی هست چون که همه داشتن میرفتن اونجا و من رشته مهندسی صنایع دیدم و با اطلاعات بسیار کمی تصمیم گرفتم که اون انتخاب کنم چون که میگفتم شاید صندوست ندارم درست مثل بقیه باشه. ولی خودم نمیدونستم مادرم هم اون موقع شد چون هر دو تازهش بودن راجب های مهندسی اونقدر اطلاعاتی نداشتند و اکثر مردمم فرزند باشند صحبت میکن. کردیم. من میگفتن میخوام برم مهندس صناعی بشم میگفتن که فرزند یکی میگفت صناعی سبک یا سنگین انگار مثلا میدونستن راجبش و فرق میکرد در صورتی که اطلاعات کامل هنوزم اکثر مردم راجع به های مهندسی و مهندس چیکار می‌کنه رو ندارن. یک مهندس مکانیک رو خیال می‌کنن همون مکانیک ماشین و یک مهندس الکترونیک خیال میکنن که مثلا سیم برق می‌کشه. واسه همین من تصمیم گرفتم برای این برنامه تا اونجایی که بشه بیام یک توضیح بدم راجع به گذشته مهندسی و آینده مهندسی و رشته‌هایی هایی که در مهندسی آینده معفقی خواهد داشت و الان تقاضی توش بیشتری این برنامه همونجور هم که با همدیگه تصمیم گرفته بودیم جناب دکتر نواب قراره که من به انگلیسی شم با توسط دوستان دیگری که در رشته های مهندسی هستن راجبش یک برنامه رو بذاریم و ضبطش کنیم و بذاریم توی همین وبسایت انجمنمون انجامنمون که apc.org که در آینده اگر دوستان بچه هاشون میخوان بیشتر راجع به این بدونن و شاید مثلا فارسی رو خوب متوجه نشن خود بچه ها بیان به این گوش بدن و شاید بتونن رشته بهتری رو برای خودشون انتخاب بکنن و در ضمن به نظرم این یک آموزش خوبی هم هست برای پدر مادرها که بتونن بهتر کمکی باشند برای فرزندانشون که دنباله رشته تحصیلی میگردن گزارشی هم که من تهیه کردم برایتون بیشتر بر حسب اطلاعاتیه که هم از طرف دانشگاه من خودم جمع کردم و هم از جورنال های مهم علمی و مهندسی مجلات معتبر مثل فوربس مگزین و در ضمن بیورو آف لیبر ستستکس که مرکز آمار کاری آمریکا می باشه و این اطلاعاتو تقریبا یک 6 ماه پیشی بود که من یک سخنرانی داشتم در روبروی روی رو های دانشگاه های ایالتی آمریکا راژ بهش بحث شده بود و یک ماه دیگرم در یک همایش علمی در خاورمیانه، میانه به عنوان رئیس بخش STEM که هستش ساینس، تکنولوژی Engineerنگ and math اونو با دوستان دیگری بررسی خواهیم کرد و می دونم که آگهی داره یواش یواش میاد اگه اجازه بدین من این تعریف سیبل انجینیرینگ رو دکتر رواب بعد از آگهی برای شما تعریف خواهم کرد بسیار سفر سوش خواهش میکنم من جیلا از شما دعوت می کنم به برنامه جدید ما همین سه شمده ساعت 9 صبح توجه به نمونه هایی از حراج ویژه سبزی مارکت پنیر والبریزو 600 گرمی 6.99 روتب دروش پندی 3.99 پیاز 6.99 مرغ کورنیشت امپریال کاشر دانه 6.99 818 745 13 817 شیزادو 8:30am لس آنجلس. مارزهای دانش دانومی از هفتمانی استادان و پژوهشگران ایرانی. همیشه نگرانی شاند کنایش من پایگاه تریژن <تصفيق> دکتر آبی دنی. فکولتی ادوائزر و کوردینیتر دانشقای کلپالی بامونه هستیم که برای ما از رشتهای گوناگون مهندشی می گویند و این دوستداران این رشتها جوی رشته های تفاصلسی آموزشی و گراجویت سکول و فیر و چجور؟ خواهش رو پیدا کنند و به جستجو بپند بسیار تفاصل و جواب خواهش میکنم. قبل از اینکه به تعریف رشته های مختلف من بفرازم اگه اگر اجازه بدین من فقط یک یادآوری میکنم که توی خود آمریکا در حدود یک مز 6 میلیون کارهای مختلف مهندسی وجود داره و اگر بخواین که مثلا تقریبا حد متوسط درآمد یک شخصی که فقط لیسانس مهندسی داره و شروع به کار کرده رو شما نگاه بکنین تقریبا ساعتی 42 دلار که مساوی یه چیزی در حدود سالی 80 هزار دلار می باشه اگه در سال کاری رو 2000 ساعت ما نگاه بکنیم الان تمام دانشجوان که با لیسانس پارو تحصیل میشن شن تقریبا دوسته تا جابافر دارن که یعنی برای کارهای مختلف اینا رو استخدام میخوان بکنن و معمولا یه چیزی سال اول که فرا تاصیل میشن بین 65 تا 70 هزار دلار در سال حقوقشونه تقریبا میشه گفت از این یک ممیز 6 میلیون کارهای مهندسی که وجود داره توی آمریکا، اکثرش تقریبا دو سه ومش بین این ستارشته مهندسیه civil engineering که همون که ما در ایران بهش میگیم مهندسی راه ساختمان و mechanical engineering که مهندسی مکانیک باشه و industrial engineering که مهندسی صنایع باشه هست یعنی تقریبا 274000 کار برای مهندسین راه ساختمان در آمریکا بوده در پارسال 264000 تا مهندسی مکانیک و 229000 مهندس صنعتی و به اضافه مهندس الکترونیک هم اگر روش اضافه بکنیم که تعدادشون کمی از این کمتره رو همدیگه شاید مثلا 70-75 درصد کارهای مهندسی در آمریکا رو این رشته ها انجام میدن اگر نگاه بکنیم من دلیل که میگم در آمریکا برای اینکه شاید مثلا همچین چیزی رو در اشورهای مختلف هم بتونیم حد بزنیم گرچه این رو در نظر داشته باشین که الان تولیدات شاید در کشورهای دیگری داره انجام میشه که از لحاظ کارگری ارزونتر براشون که جنس ها رو تولید بکنن ولی کارهای مهندسی هنوز توی آمریکا انجام میشه اما اگه کشورهایی برین که کارهای تولیدیشون بیشتره مثل مکسیک مثل الان مثلا ترکیه اینا شاید 80 درصد مهندساشون در دانشگاه ها مهندس سنایه باشن حالا من بعدن تعریفش رو خواهم کرد و در امریکا معمولا مهندسی صنعتی دانشکده مهندسی صنعتی جزو کوچکترین دانشکده هاست در صورتی که توی کشوری که تولیداتشون بیشتره جزو یعنی اصلا بزرگترین دانشکده مهندسی. جالبی دیگه اینه که الان در سال 2014 دقیق کردن و فهمیدن که چهار تا رشته مهندسی که یکیش است پترولیوم انژینیرینگ که مهندسی نفت، ماینینگ و جیولوجیکل انژینیرینگ که مهندسی معدنی، بیومدیکل انژینیرینگ که مهندسی پزشکی و اندسترال انژینیرینگ که مهندسی صنعتی هست جزو تعداد مهندسی نیه که رشتهش بالای ده درصده اه و اه اگر نگاه بکنیم ببینیم که تقریبا در تغاظای این, این کارهایی که گفتم این شغلایی که گفتم در مهندسی سه برابر تعداد کسانیه که واجد شرایط هستن برای یک کار این رو شما در نظر داشته باشید دوستان عزیز سلوشن مندگان محترم اگر کسی مثلا میخواد رشته ایمان انتخاب بکنه که در آینده خیالش راحت باشه که بالاخره کاری خواهد داشته آخر معلومه یهو شواش به این رشته های مهندسی توجه خیلی بیشتری توی آمریکا میشه چون که اوایل میگفتن که شاید همینجوری که کارها داره از آمریکا میره بیرون میره مثلا اجناسو دارن توی چین درست میکنن توی اندونزی درست میکنن اما فردم بعدا متوجه شدن که تمام کارهای مهندسی شو در اینجا انجام میدن همونجوری که گفتم یک مکانیک و یک مهندس مکانیک با هم دیگه میکنه یک تکنسین احتیاج هر جایی باشه یک مهندس الکترونیک یک مهندس فرزند مکانیک میتونه همینجا طراحیش رو انجام بده و در از مثلا پنج ثانیه این طرحش رو بفرسته به مثلا اندونزی که اونجا تهیه کنن اینو یه چیز جالب دیگه ایم که وجود داره اینه که در شهر هانتفیله الاباما ما تعداد مهندسینمون بر حسب هر شهرمند اونجا پنج برابر اکثر جای دیگه امریکا و دلیل هستش همینه که اونجا مرکز ناسا هستش و شرکت های هواپیماسازی و شرکت هایی که برای ارتش و نیروی هوایی کار میکنن مرکزهای مختلفی اونجا دارن به خاطر این تقریبا پنج برابر جاهای دیگه اونجا مهندس وجود داره امون چون که قبلا گفته بودم تقریبا در سال دهه 2000 تعداد کسانی که در رشته مهندسی وارد می شدن و خارج می شدند، یعنی وارد تحصیل می شدن بسیار کم بود و به خاطر این شورتش و کمبود بسیاری در مهندسی در اینجا الان وجود داره اگر ما نگاه بکنیم که تغازه های کدوم رشته از اصلا بیشتره همون که گفتم الان یک چیز دیگه ای هم که میتونیم روش نگاه بکنیم اینه که چه مهندسی هایی چه مهن، چه در چه رشته مهندسی افرادی که اون تو هستن مسنتر هستن یعنی حد متوسط سن کسانی که فرزن تو اون رشته هستن چیه بر حسب اون ما باید تقریبا نگاه بکنیم ببینیم که ده سال دیگه آیا اینا بازنشست میشن اگر سنشون بالا هست و موقعی که بازنشست شدن جای اینا رو کی خواهد گرفت رشته هایی که من اول برنامه راجبش صحبت کردم که مهندسی نفت و مهندسی سنایه بود جزء مهندسی که موسند ترین رو در اون رشته ها هستند و به زودی اینو بازنشست میشن به خاطر این باز هم شما توجه داشته باشین که این دو رشته مورد تقاضای بسیاری هست. حالا اگر اجازه بدین روی تاریخ مهندسی یه ذره صحبت بکنم که از اون بهم بتونم نتیجه بگیرم که چرا مثلا اسمای مختلفی برای رشته های مهندسی گذاشتن. تعریف اولیه مهندسی اینه که یک مهندس میاد به یک ارمیل ور میداره و تبدیلش میکنه به یک کار عملی یعنی تحصیلات یک مهندس تقریبا همه مهندسان در دو سال اول علوم مختلف فیزیک و شیمی و ریاضیات و بعد از اینی که اینا رو یاد گرفتن اون واقع برای دو سال آخر وارد کورسای مخصوص رشته خودشون میشن پس ما باید اه این اه کسانی که وارد این رشده های مهندسی میشن تقریبا باید از بچگی یک اه اه احساسی داشته باشن به رشده های مهندسی فرزن من خودم یادم میاد که از مادرم اگه اینجا بودن بیشتر بهش میتونستم بگن از کمباد میرفتم بالا که از اون بالا یک جرس عقیدی درست کنم که ورزن از یک جنسی رو از بالای کمباد بیارم پایین و بعدم فکر کردم که خب پایین اومدنش با راحت میتونه آدم این رو با وزن خودمون چیز بیاره پایین اما بالا بردنش خیلی راحت بود اگه من مجبور نبودم که اون چیزی که درست کردم و دوباره کوکش کنم کاش که خودش دوباره میتونست کوک بشه و خب یعنی یه چیزهایی هست که آدم توی این سوالات بعد براش پیش بیاد یک فیلم یک برنامه بسیار خوبی در تلویزیون هست به اسم How Things Are Made در پی بی اس وجود داره و اگر دوستان دوست داشته باشن، بچه هاشون رو بفرستن اون فیلم ها رو تماشا کنن، روچه به چیزهای مختلف صحبت میکنه که مثلا قضاها چجوری درست میشه، نمیدونم لاستیک ماشین چجوری درست میکنن، اگر بچه ها دوست داشته باشن بشینن اون رو تماشا کنن، شاید کسانی باشن که دوست داشته باشن بعداً بیان وارد رشته مهندسی بشن. حالا، خودمهندس معمولاً معمولا چیکار میکنه؟ این موقعی که علمش رو که یاد گرفت بعداً میاد سعی میکنه که یک سری اطلاعاتی جمع بکنه این اطلاعات رو با یک الگوریتم مخصوص یعنی یک راه حل مخصوصی رو دنبال بکنه که بتونه باهاش کاری رو انجام بده پس یاد گرفتن یک الگوریتم حالا هر الگوریتمی باشه هر تئوری مختلفی باشه خیلی مهمه برای کسانی که میخوان مهندس بشه بعدن بعضی از این مهندسین کارهای طراحی انجام میدن و یعنی اکثرا کار طراحی انجام میدن طراحی تر بعضی وقتها طراحی یک جنس یک کالاس و بعضی وقتها طراحی یک پروسس یک کار که راجب این ما بیشتر صحبت خواهیم کرد در اول برنامه رادیو اینه که مثلا مهندسی چطور مهندسی واقعا وجود داشته باشه اگر شما برین در حدود شاید مثلا صد و خورده ای سال پیش که رشته های مختلف مهندسی معرفی شد اول اول توی آمریکا دو نوع مهندسی وجود داشت یکیش مهندسی سیویل انجینیرینگ بود که سیویل انجینیرز که مهندسین راه ساختمان اما جور که ترتیش الان گفتیم تخصصشون در ساختن راهها و ساختمان ها بود یعنی دلیل اصلی که بهشون شما میگفتن سیول انجینیر که سیولین یک شهرمنده اینه که شهرسازی انجام میدادن حالا این راه ها رو به شهر و یا ساختمان های شهر رو انجام میدادن که میشدش سیول انجینیر البته الان رشته های مختلفی در سیول انجینیرینگ وجود داره که من بعدا راجبش صحبت خواهم کرد خب همونجوری که گفتم دو نوع مهندسی وجود داشت اگر یکیش سیول انجینیرینگ بود آیدکتور نوا فکر میکنین اون نوع دیگه چی میشد؟ مکانیك ببینیم ببینین برعکس سیویل چی میشه؟ میلیتاری بله،, بله بله و اون موقع سیویل انجینیرینگ داشتن که راه ساختمان انجام میداد برای شهرمندان، کارهای شهرسازی و اون دیگرانش میلیتاری انجینیر بودن یعنی مهندسین ارتشی. آه. چرا؟ برای اینکه اکثر کالاها و اجناسی که درست می شدد طراحی می شود توسط مهندسین هنوزم البته همونجره اولش برای دوقل دفاع. دفاع. دفاع بله حمله نه دفاع برای, برای دفاع استفاده می شود برای ارتش. و همون که مثلا دکوموتیو رو درست کردن و نمیدونم ماشین رو درست کردن و حالا یواش یواش اسپیش رو درست کردن و بقیه چیزا اینا اولش برای ارتش بود و بعدا خب بادم میادش رو یواش یواش راهش رو پیدا میکنه که چجوری مردم عادی هم بتونن از این علوم استفاده کنن و از این اجناس بتونن که شده توسط مهندسین استفاده کنه خیلی یاتی بوده برای بله، خیلی. سازی. و این پلسازی چیزی بود که درست بینه بین یک ارتشی و یک سو انجینیر هر دوتا بعد اونجا بودن که میتونستن ان انجام بدن آقای دکتر نواب به جنوب اجیر اعلام کردن که با باید, باید بریم آلی. آگهی و بری آگه. ایستگاه های رادیوی Krn 670 AM Kwkw AM با همکاری گروه حمایت خانواده سومین بازار کاریابی خود را برگزار می کند این بازار کاریابی شنبه اول نوامبر از ساعت 1 تا چهار بعد از ظهر در انسینو کامیونیتی سنتر واقع در نه سی و35 بللباب بلوارد برقرار می شود از صاحبان مشاغل دعوت می کنیم جهت رزرو میز خود هر چه زودتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرند در این برنامه کارگاه های آموزشی در رابطه با رزومی نویسی و همچنین انجام مساحبه های شغلی موفق برگزار خواهد شد شمبه اول نوامر ورودی برای جویندگان کار رایگان است 670AMKIRN.com و یا ProFamilyGroup.com 818-344-6818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 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا کئی آی آر این 670 ای ام سیمی ولی لوس مرزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پشوشگران ایرانی دیت وایسه و کوردینیتر در دانشگاه کلپولی با منا هستیم و برای ما گفتن از رشتهای گنابون مهندسی و اینکه که دوستانی کنقومن در, در شده در این کنند در فرای آیندشون چجوری دنبالون برن تاریخ پیدایش و مهندسی رو دارن برای میگن خیلی جالب چقدر جالب سیویل انجینرینگ و مهندسی هفته شد بسیار سپس روزا تو میکنم همون که گفتم این، تقریبا الان میشه گفتش که بعد از این که یک مهندس اطلاعاتی رو جمع میکنه و یک الگوریتم استفاده میکنه که یک مسئله رو حل بکنه این کافی نیست همون که شما فرمودین رجب پلسازی تقریبا میشه گفتش که تمام کارهایی که الان انجام میشه توسط یک مهندس تراحی نمیشه الان هر شیزر که اطرافتون ببینین من الان دارم نگاه میکنم یک صندلی اینجا نش... میبینم بلنگور رو اینجا میبینم ساعت اینجا میبینم تمام اینا توسط یک نفر تر تر سازی نشده بلکه یک تیمی از مهندسین مختلفن که روی این کار میکنن یعنی هر رشدی رو شما انتخاب کنین باید در نظر داشته باشین که دیگه یک نفر تنها با خودش یک جادن شسته توی تیمی کار میکنه واسه همین کارهای دیگه هم هست که یک مهندس باید انجام بده مثلا باید بتونه یک پروژه رو کامل انجام بده یعنی از لحاظ مدیریت پروژه بتونه بفهمه که چیکار باید بکنه باید با تیم برخورده درستی داشته باشه بعضی وقتا تیم هستن که نه تنها توی امریکا نشستن هم امثانیه در فرزن میگم اندونزی هم نشستن توسط اینترنت دارن با هم دیگه بحث یک ترهیر را دارن میکنن و این شخص باید حتی مثلا فرهنگ یک نفر که از اندونزی میاد یا از چین میاد یا از ژاپن میادم بدونه که بتونه چیگونه با هم دیگه صحبت بکنن و در زمین همون که گفتم از لحاظ تحصیلاتشون خب باید در رشده مثل ریاضیات و علوم راحت کامل بتونن این درس رو پست بکنند. برحال سیفل انژینیرینگ همون جور که راجبش صحبت شد مهندسی را ساختمان خب مهندسی است که هنوز الان بعد از چندین سال همونجور ادامه داره و ادامه خواهد داشت چون که مردم هنوز شهرسازیشون رو خواهند کرد هنوز راه ها رو مجبورن داشته باشن و خود مهندسی انجینیرینگ مهندسی راه ساختمانم بر از اینه که لیسان کسی میگیره وارد فوق لیسانس میشه در فوق لیسانس رشته های مختلفی توش هست مثلا از بررسی خاک و یا آب، برای مثلا ست فرزند فرزن درست کردن ست درست کردن راه های آبی کسانی هستن که متخصص اون کار میشن کسانی هستن که متخصص سترکچر میشن یعنی درست کردن یک, یک ساختمانی و همینجور رشته‌های های مختلفی همینجور که گفتم وجود داره انوارمنتال زیست،, زیست مهندسی زیست کسانی هستن که اینا اول مهندسی راه ساختمان هستن و بعدا وارد دوم میشن و بعضی وقتا مثلا رجیب AQMD Air Quality Management District خود کالیفرنیا شما برین اونجا میبینین که اکثر کسانی که مهندس هستن اونجا هستن مهندسین را سیبل انجینیر و راه ساختمان هستن اول برنامه گفتم شاید مثلا یک چهارمه مهندسینی که در آمریکا امریکا هستن مهندس راساختمان هستن همونجوری که گفتم در اول اول شاید نصف نصف بود اما چون که وسائل مختلفی که ما ترراحی می‌کنیم، تعدادش خیلی بیشتر شده این مهندسی ملیتری انجینیرینگ که مهندسی ارتش بود یواشواش شروع کرد تقسیم شدن قسمت اولش که تقسیم شد تقسیم شد به مهندس مکانیک. کار مهندس مکانیک در اصل طرح هر کالایی که به نظرتون میاد هست. البته طرح فانکشن یعنی طرح چیزی که اون کار میکنه. مثلا به صندلی آدمرگ نگاه بکنه، صندلی رو نگاه میکنن و یه مهندس مکانیک میگه که من این صندلی رو چجوری طرح بکنم که یه نفر آدم بتونه روش بشینه. یعنی اون کار نشستن رو در اصل داره طرح میکنه و یا اگر فرزن یک که آچار فرانسایی رو داره مثلا طرح میکنه میگه که من چیکار بکنم که فرزن با آنالیزی که انجام میدم و الگوریتمی که استفاده میکنم مطمئن باشم که این فشاری که روی این آچار میاد بتونه مثلا اون پیچو بچرخونه برای این کار ریاضی و فیزیک بسیار احتیاجه یعنی کسی که میخواد وارد مهندسی مکانیک بشه باید فیزیک و ریاضیش بسیار خوب باشه و خاطرتون باشه که اکثر کارا نقاشی نیست یعنی یکی طراحی مهند یک مهندس مکانیک ترراحیش صندلی رو انجام نمیده بلکه فانکشنش یعنی کار اون صندلی رو داره انجام میده و فرق میکنه کسی این که طراحی بیرون سندلی رو انجام میده یکی هستش که تراحه یعنی یکی هستش که کاملا داره از سمت راست مغزش استفاده میکنه یا آدم هنرمندیه که کاملا هنر و قشنگی و زیبایی رو میبینه و یک مهندس تقریبا اکثرا داره طرف چپ مغزش استفاده میکنه و داره یک مسئله رو حل میکنه که این مسئله اینی که من چجوری اینجا بگیرم بشینم بدونی که سندلی بشکنه. پس این شد مهندس میکانی که داره طرحش میکنه. بعد از این که اینایی که دارن یه چیزی رو تره میکنن بعد چیز باید ساخته بشه. چیزی که باید ساخته بشه رو مهندس تولیدات یا منوفکترینگ انجینیر شروع میکنه در اون کار کردن و اینی که مثلا فرزن یه آشار فرانسه رو که شما کردین یه صندلی که شما کردین آقای مهندس مکانیک من چجوری با چه ماشینالاتی با چه طریقه اینو من بسازم پس این شد مانیفکتچرینگ انجینیر یعنی مانیفکتچرینگ انجینیر یا مهندس تولیدات همون مهندس مکانیک همون مهندس ارتشه که شروع کرده تخصص پیدا کردن در ساختن یک جنسی که مهندس مکانیک طرحش میکنه و اگر یه استفرم بیانیم این ور تر یه مهندس سنایه میرسیم مهندس تولیدات و سنایه تقریبا یک شخصه تخصص مهندس صنای بیشتر اینه که اگر ما بیایم این جنس رو یه دونه اگه بخوایم بسازیم خب زیاد مهم نیست اگر اگر بخوایم از اون جنس صدها ها هزار ها میلیون ها بخواییم بسازیم چیکار بکنیم که از لحاظ کیفیت کمیت خرج تمام اینا کمتر بشه و چجور کارخونه کارخونه رو چی کارخونه رو ما چیکار بکنیم که بتونیم یک جنس رو ب... با کمترین خرج و بالاترین کیفیت به بازار بیاریم مثلا ای دکتر نوا من خاطرم است که در به آمریکا که اومده بودم ما میرفتیم مکدونالد و مکدونالد تمام یه دونه همبرگرش و فرایزش و فرایزشو سوداشو با هم دیگه میداد اون موقع 99 سنت <تصفيق> الان شما بخواییم بریم مکدونال اونا رو بخواییم همون جنس ها رو سفارش بدین تقریبا 6 دولار این 7 دلار در میاد بله. اما همون موقع من میرفتم فرزن مغازه سپر مارکتوری بخواستم یه دونه شیشتایی سودای مثلا فرزن پپسی بخرم روی حراج که بود روی حراج 99 بود یعنی 6 تا 99 الان اگه شما برین توی همین ها بخواین روی حراج 12 تا رو بخرین 12 تا تقریبا 2 دو دلار یعنی ش... یعنی 16 تا 699 سنت یعنی بعد از بعد از تقریبا 40 سال اه... قیمتش تقریبا همونجور مونده چرا دلیل هستیش کسانی هستن مثل مهندسین صنایع که میان میفهمن که چجوری من این جنس رو به جایی که مثلا ده تا بخوام بسازم ده میلیون میتونم بسازم با چه چیدمانی چجور, چجور ماشینالاتی استفاده بکنم که بتونم همون جنس رو با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر درستش بکنم همتون. و یعنی از تراحی باید یاد بگیره بیادش به تولیدات تولیداتو یاد بگیره و باید وارده چیدمان یک کارخونه بشه حتی مذارب مخام مثل این بچ همبرگرشم اگر مهندسین نبودن و اگر محس پرداکشن و افیشنسی بابر نبود اونم به این سرعت و به این تفیشیزی طوری نمیشه. درسته و الان حسابشو بکنین اگر شما همون مکدانلد همبرگر مکدانلد اگه بخواین تو مکدانلد بخونین میشه هفت دلار. اگه بخواین همونو توی خونه مثلا درست بکنین قیمتش بالای هفت دلار در میاد چون که یه دونه درست کردن یه دونه خرچش خیلی بالاتر از دونه درست کردن صدها ها میلیونه در یک کارخونه <تصفح> و خب آقای هنری فورد که ماشین فورد رو تر کرده بوده اینا سالها پیش میگفتش که من میتونم هر چند تا ماشین فوردی درست کنم تا اونجایی که همشون سیاه باشه <تصفيق> ولی الان حسابش بکنیم شما رنگ های مختلف دارین از ماشین ها رو نگاه میکنین و نمیدونم دونم ترهای مختلف همه اینا رو دارن می و قیمتی که شما تنوز دارین می بسیار نسبتاً خیلی ارزونه شما اگه نگاه کنین یک ماشین کاملش میتونین بخرین الان البته اونایی که مثلا گیرونتر نه اونایی که حد متوسط چیزی در حدود مثلا 20,000 دلار قیمت تقریبا میشه گفتش که قیمت درست کردن این ماشین یک سوم قیمت اون فروششه و یعنی چی؟ یعنی در حدود 7-8 هزار دلار شما یه دونه ماشین بتونیم بسازین با این همه کیفیتی که الان توش وجود داره با این همه اجناسی که توش میذارن دوربین های مختلف نمیدونم سندری های مختلف اینا همه اینو میذارن هفه هش هزار درائی ماشین درست میشه اگر مثلا فرزن یک مهندس سنویه نبود این کارا انجام نمیشد چون که تخصص اینا اینه تخصص مهندس مکانیک ترهشه تره اون ماشین فانکشن اون ماشین مرحو پس اون مهندسین ارتش یواشواش شدن متخصص طراحی متخصص تولیدات و متخصص کارخانجات اون مهندسینی که متخصص طراحی بودن هم یواشواش هم اون مهندسین مکانیک هم یواشواش شروع کردن به کارهای مختلفه تخصص پیدا کردن فرزن اونایی که بیشتر داشتن هواپیما می ساختن پس شدن مهندس هواپیما یعنی ایروسپیس انجینیر اونایی که داشتن بیشتر ماشین تولید می کردن شدن آروموبیل انجینیر مهندس اوتوموبیل یعنی دارن همون کار انجام میدن اما تخصصشون یه مهندس میکنی که تخصصش در ساخت ماشینه در طراحی ماشینه یا یکی دیگه که مثلا تخصصش در طراحی مثلا هواپی ماست برای همین رشته‌های مختلفی دیگه ای هم وجود داره یواش یواش همون آدما اومدن و فرضاً که توی تولیدات بودن گفتن که خب ما تخصصمون بزیات توی تولیدات نفت و مواد شیمیایی اینا شدن مهندس شیمی و مهندس پتروشیمی و یواش یواش بعدش هم بالاتر مهندس نفت ممکنه که مثلا مهندس نفت اون مهندس پتروشیمی نیست اما خب یکی تقریبا میشه گفت بالای زمین داره کار میکنه داره مثلا پالایشگاه ها رو میسازه چیدمان پالایشگاه رو میسازه کسی که مهندس شیمی است اونی که مهندس نفته از زمین میره پایین میگه که من چجوری برم برسم به نفت چجوری زمین رو بهش و چجوری نفت رو از اون زیر سنگا در بیارم پس این قسمتش هم وارد تراحی ماشینالاتی میشه که برای نفت و برای مثلا مکانیک و اینا هستش آی دکتر اگه اجازه بدین ما بریم برای آگهی بعدی و برمیگردیم خدمت امید آیش میکن اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیجان کوهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310 بیژن 80 بیجان کوهنزاد، Enrolled Agent. 310-220-80. عزیز سفرحاش و 5500 ایرانیان. دفتر در انسینا. Optimal Net Tax Services. بیجان کوهنزاد. اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیجن کهانزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید 310-820-1080 بیجن کهانزاد 310-820-1080 عضوه 08 و 55 ایرانیان دفتر در انسینا Optima Net Tax Services بیجن خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و حوادث ناشی از کار، پیام شایانی. تصادف امری اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و حوادث ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و کیل کاردان جامعه ایرانی در فودنالیز، لوس انجلیس، گلندل، اروان، سندیاگو و سنهوزه با شماره تلفون لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید 818-777-777-777 77 لاکی سوین من دکتر خسرو صادقانی با بیش از پانزده سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت یکی بعد از ظهر با شما خواهم بود 818-990-75-46 46 670 ارزهای دانش برنامه ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایدانی دوستان عزیز پای گفتار آقای دکتر رابدنی استاد فکلتی ادوائزر و کوردینیتر دانشگاه کلپالی هستیم و چقدر شیرین و آموزنده برایمون در اول اشتاهای مختلف من, من گفتن و جنبه های فنی و اقتصادی و اجتماعی غیره و شده <مساید> بعد ههش شد و بعدداری بر بر ش های فتره هر موقع بهصلافستید میشه اعلام که تلفن رو باز کنیم و با دوستان به ۳۲ 23 از شما داشته بسیار خواهش میکنه آ دکتر فکر کنم تلفن بودش 323 512 ه بله. 012 7226664. بله. اگر دوستان سوالی داشتن با کمال میل جوابش رو خواهم داد چون که دیگه الان فقط من و دکتر نواب هستیم و با هم دیگه هیچ گونه چیزی اصلا فنی نداریم. بله. به هر حال من تا مهندسی کیمیکال انجینیرینگ رو گفتم البته به جزئیاتش هم می‌پردازم بعداً فقط نمی‌خوام که یادم بره که بعد از مدتی که یواش, یواش ما به برق برق کشف شده شو و بعدا ما راجب اون آشنا شدیم مهندس الکتریکال انجینیر یا مهندس برق هم به بازار آمد که اینا کارشون اینه که چجوری از برق استفاده کنن و سیستمای مختلف و به برق تبدیل بکنن. یعنی همون ماشینالاتی که قبلا با موتورای مکانیکی کار میکردن و یواش یواش تبدیل بکنن به سیستمایی که با برق کار میکنه و آه. مهندس برقم یواش یواش بازم یک دیمند تغاظای بسیار بالایی پیدا کرد که بر اینکه خیلی چیزها یواش یواش بعد برقی می کارهای مکانیکی و نمیدونم موتورهایی که با بخار آب کار میکرد و اینا یواش یواش تبدیل شد به وتای برقی و و خلاصه تعداد بسیار زیادی هم مهندس الک الکترونیکو و الکتریکال به بازار کار اومدن. پس این, این رشته های مختلفی که من رشته صحبت می کردم، رشته های کلی مهندسی یعنی اکثری کسانی که وارد دانشگاه میشن یکی از این رشته ها رو انتخاب میکنند که یا مهندس راه همانه civil engineering یا مهندس مکانیک mechanical engineering، مهندس manufacturing engineering، مهندس صناعی industrial engineering و مهندس شیمی chemical engineering مهندس نفت پترولیوم انجینیرینگ البته پترولیوم انجینیرینگ برای اکثر جاها برای لیسانس ندارن کسانی که کیمیکال انجینیر هستن برای فوق لیسانس بعدن میخوان ادامه بدن و یا دکترا وارد پترولیوم انجینیرینگ میشن مهندس معدن وجود داره ماینینگ انجینیرینگ مهندس برق وجود داره الکتریکال انجینیرینگ و Industrial Engineering که مهندسین سنایه هستن اکثر جه ها هستش Industrial and Systems Engineering یعنی مهندسین سیستم حالا به این مهندسین سیستم هم راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد چون که الان بسیار مهم شده جوری که تقریبا تا اکثر دانشگاه مهندسی فوق لیسانس مهندسی سیستم هم گذاشتن و دلیلش همون دلیلی که قبران داشته بهش صحبت کردم و اون اینه که الان شما هیچ کاری رو تن به تنهایی انجام نمیدین به عنوان یه مهندس و موقعی که شما فرزن یکی که یک هواپیما رو داره مسئول ساخت و طراحی یک هواپیماست بعد در نظر داشته باشه که همه چیز نمیدونه اما باید موقعی که مثلا طراحی میکنه اون هواپیما رو و یا تولید میکنه اون هواپیما رو همه جنبه هاشو باید در نظر داشته باشه یک سیستم انجینیر میاد به یک هواپیما نگاه میکنه و این هواپیما رو که یک یک سیستم خیلی کامپلکس و پیچیده ای هست و باید یک نگاه بکنه و برای اون طرح بکنه فرزن میگم حسابش بکنین شما اگر میخواین یک وارد یک اتاق بشین و اتاق خوابتون بشین میخواین میگین تختم رو کجا بذارم یه کار راحتیه اما اگر میخواستین فرزن یک ساختمون بزرگی رو که مثلا آدمای مختلفی توش کار میکنن یک آفیس بیلدینگ بزرگی. که های مختلف دوش کار میکنن شما باید در نظر داشته باشین که خب ممکنه اون شخصی که وارد اینجا بشه فرضاً یه شخصی باشه که هاندیکپ باشه و بخواد از در اصلی وارد بشه و بل طبقه مثلا ششم یا یه بیمارستانی رو که میخواین ترک بکنین باید در نظر داشته باشین که امکانش هست یک مریضی وارد اونجا بشه که مجروح و باید یه جوری این مریض از در به مثلا طبقه هشتم که فرزن ایکس اونجا وجود داره و اک... اونجا عکاسی میکنن وارد اونجا بکنی این راهی ای آدم معمولی میتونه بره اما یک نفر که مجروحه ممکنه اون کارو نتونه بکنه یا یک آدمی که فرزن مسن هست ممکنه از پله ها نتونه بره بالا واسه همین تمام جنبه های رو باید یک نفر در نظر داشته بگیره نمیتونه فقط بگه من مهندس مکانیکم من کار من نیست بصح همین الان فوق لیسانس برای سیستم انجینیرینگ که نشون میده که چجوری های مختلفی رو انجام بدین با آشنایی به اینی که که کارهای دیگه‌ای هم در اون سیستم وجود داره. آید دکتر نواب یک تلفنی اومده اگه اجازه بدین من جواب بدم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه. من ممشن میخواستم به را دیگه را الان واسه کردم مهندسی به نیسا ورد میخواستم ببینم نظر جناب درباب راجعه به مهندسی نفت، انجینیر، پترولیوم انجینیرین کیه؟ و چجوری باید اگه میدونن چجوری باید شروع کردون یه تصرید من سی سلشه میخواید این رو دوست داره درمون میخوام ببینم چطور کار کنم؟ اگه اجازه بدین جناب آقای دکتر نواب لطف کرده بودن مهماندار این برنامه هستن و من خودم داشتم راجع به این صحبت می‌کردم. کسانی که میخوان وارد مهندسی نفت بشن پترولیوم انژینیرینگ اکثران کسانی هستن که رشته قبلیشون لیسانسشون تو مهندسی مواد یا مهندسی شیمی بوده یعنی باید اکثر جاها اول لیسانس شیمی یا لیسانس مهندسی مواد materials engineering رو میکیرن و بعدا برای فوق لیسانس وارد پترولیوم engineering میشن و بسیار رشته خوبیه اگر شما از اول گوش کرده بودین و اگر بتونین بعدی رو گوش بدین اینه که یکی از رشته هاست که خیلی تقاضا داره الان خلاصه من این فامو ادامه میدم چون که 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم الان رشته هایی که مثل فرزند میگم رشته سیویل انجینیرینگ هستن برای فوق لیسانس میتونن وارد انوایرمنتال یعنی مهندسی منابع محیط جیوتکنیکال انجینیرینگ که رابطه خاک و اینا صحبت میکنن و Uh, structural Engineering که راجب خود بیلدینگه Transportation Engineering که برای همده نقل و Water Resources Engineering که برای مهند، مهندسی راه های آبی هست اه، بعدا اه، کسانی که مهندسین برخ هستن یا در رشته یه لیسانس یا فوق لیسانس میتونن کمپیوتر انجینرینگ که کامپیوتر انجینرینگ بیشتر بیشتر جاهایی که مهندسی برق هستش، هاردويرشه یعنی سخت افزارشه، واسه جا نرم افزارشم هست. البته در نظر داشته باشین که ممکنه که تقاضا برای این کاریه ذره کمتر از بقیه چیزا باشه، بر این که خیلی از کارهایی که کامپیوتر انجینیر انجام میدن جزو درسای عمومی تمام مهندسا شده. دی ان اونقدر دیگه اسپشالایزد ممکنه که احتیاج نباشه. و پاور انژینیرین که برای جایی که تحسیزات برقی هست ازش استفاده میکنن و بعدا میریم وارد رشده های دیگه میشیم مثل ایرو سپیس انژینیر همونجه که گفتم ایرو سپیس انژینیر من دارم تون تر صحبت میکنم چون که جناب راجیر به من دو دقیقه وقت دادن و راجبه مهندسیه HPM agricultural engineer agriculture engineering الان زیاد دمانت نداره تقاضا نداره و اما تقاضا الان توی همج medical انجینیرین و بایومیکنیکال انجینیرین اگه اجازه بدین زود من فرق این دوتا رو بگیم با medical رشته یه که مهندسین برق میتونن توش وارد بشن و بیشتر مثلا رو درست میکنن فرزن این دستگاه های توسط کسانی که با میکال ان هستن درست میشه با مکانیکال ان کسانی هستند که از لحاظ مکانیک بدن وارد هستند و جنسهایی رو درست میکنن کالا رو درست میکنن که فرزن یک کتاداریی که درست میکنن یک دستگاههایی که وارد بدن آدم میشه و یک5 هر چیزی که برای پزشکی استفاده میشه و داخل بدن آدم میشه حتی در جایی که میرسه به نانومنفکچرینگ یعنی بسیار بسیار بسیار, بسیار, بسیار کوچیک که فرزن یک ماشین رو درست بکنن که توی خون آدم با تزریخ بشه که این ماشین بیاد یک دوایی رو داره بذاره روی یک انصاری که در بدن آدم مریضه بله. اینا الان داره. درست میشه الان داریم ما پوست میسازیم فرزن ترسطه منفکچرینگ تولیدات تولیدات پوست بدن هست تولیده الان گوش, گوش بدن هست گوشت فهمت. بدن هست و خیلی اتزای جالبه هست که بیشتر راجبش در آینده اگه اجازه بدین بعدا صحبت خواهیم کرد که بتشتر. وقت تمور شده دکتر خیلی ممنون خیلی خوبیر برای شما شواندگان عزیز و عزیز حجیر عزیز و قربان دانش برنامه از همجمن استادان و پژوهشگران ایدانی